<تصفيق> طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت بیستم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن می‌پردازد. در این راستا برنامه بیستم رو به موضوع اهداف بیستت انبیا اختصاص دادم اهداف بیستت انبیا هدف از بیستت انبیا چه بوده است؟ افرادی که با دایه رسالت و نبوت در طول تاریخ بشری کی پس از دیگری اومدن و رفتن چه پیامی برای بشریت داشتن در این راستا به بررسی یکایی که این اهداف با انایت به آیات متعدد قرآنی می‌پردازیم دعوت به توحید مهمترین هدف انبیا توحید بوده همه انبیا بدون استثنا مردم رو دعوت به توحید و دوری از شرک و کفر فرا خوندن سوری آیه سی و ششم و در حقیقت در میان هر امتی ای برانگیختیم تا بگوید الله را بپرستید و از تاغوت یعنی سرکش بپرهیزید پس از میان ایشان کسی است که الله او را هدایت کرده و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار است بنابر این در زمین بگردید و ببینید فرجام تکسیب کنندگان چگونه بوده است سوری فصلت آیه 14 چون فرستادگان ما از پیش رو و از پشت سرشان بر آنان آمدن و گفتند زنهار جز الله را مپرسید گفتند اگر پروردگار ما میخواست قطعا ملائکی فرو میفرستاد پس ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم دعوت به سوی الله و نفی هرگونه شرک و کفر و خرافات که نخستین پیام انبیا بوده در آیات متعدد قرآنی تجلی نموده چنانچه الله تعالی به محمد نبی میفرماید که ما هیچ پیامبری رو قبل از تو مبعوث نکردیم مگر آنکه به او وح کردیم تا مردم رو به توحید و یکتاپرستی دعوت کنند سوره انبیاء بیست پنجم و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وح کردیم که معبودی جز من نیست پس مرا بپرسید و همچنین میفرماید فرماید سوری زخرف آیی 45 و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشته ایم جویاشو آیا در برابر الله الرحمن خدایانی که مورد پرستش قرار مقرر داشته ایم نوح نبی قوم خودش رو به یک تا پرستی دعوت میکنه. چنانکه در آیی زل میخوانیم خانیم سوری نوح آیات دوم الى سوم نوح گفت ای قوم من من شما را هشدار حشداردهندی آشکارم که الله را بپرسید و تقوای الهی پیش سازید و مرا فرمان برید هود نبی در اولین پیام خود قومشو چنین مخاطب قرار میده سوری هود آیه پنجا و به سوی قوم آد برادرشان هود را فرستادیم هود گفت ای قوم من الله را بپرسید جز او هیچ معبودی برای شما نیست شما فقط درو پردازید صالح نبی نیست در اولین پیام خود قوم سمود رو دعوتی به پرستش الله یگانه میکنه سوریهود آیش از یکم و به سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من الله را بپرستید برای شما هیچ معبودی جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است دعوت به معاد یکی دیگه از اهداف انبیا دعوت مردم به معاد و عالم بعد از مرگ بوده هر یک از انبیا نه تنها مردم رو به توحید دعوت می‌کردند، بلکه اونا رو به سوی حیات و اخروی نیز فرا خوندن هدف اونا این بود که تا به مردم بفهمونن که بعد از مرگ حیات دیگه هم هست که در اون به تمام اعمال و رفتار بشریت رسیدگی میشه و هر کس نیز باید مراقب اعمال و رفتار خودش باشه تا در اون عالم دچار عذاب و گرفتاری ابدی نشه چنان که قرآن کریم از زبان نوح نبی میفرماید که او مردم رو به زنده شدن دوباره در عالم قیامت فرا میخونه در حالی که کفار در برابر او موضع گیری میکردن و به مردم میگفتند سوره مؤمنون آیات 35 الاسی و 8 آیا به شما وعده میدهد که وقتی مردید و خاک و سخن شدید باز شما از گور زنده بیرون آورده میشوید؟ چه دور است آنچه که وعده داده میشوید جز این زندگانی دنیای ما چیزی نیست می و زندگی میکنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد او جز مردی که بر الله دروغ میبندد نیست و ما به او اعتقاد نداریم سوره اعراف آیی پنجان همانا همانانو را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من الله را بپرسید که برای شما معبودی جز او نیست من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم حود نبی نیز قوم آد را به مسئله رستاخیز دعوت میکنه و به اونها میگه سوره شعرا آیه 135 پنجم من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم شعیب نبی هم مردم رو به معاد دعوت میکنه سوره حود آیه 84م و به سوی اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم من الله را بپرستید برای شما جز او معبودی نیست سوره انکبوت آیسی به ششم و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم ای قوم من الله را بپرسید و به روز باسپسین امید داشته باشید و در زمین سر به فساد بر مدارید موسای نبی نیز مردم قوم خودش را به معاد دعوت میکرده چنان که در نخستین وحی مسئله معاد را الله بر او مطرح میکنه سوره تاها آیه پانزه هم در حقیقت قیامت فرارسنده است میخواهم آن را پوشید دارم تا هر کسی به موجب آنچه آن چه میکوشد جزا یابد سوره انعام آیی 154 چارم آنگاه به موسی کتاب دادیم برای اینکه نعمت را بر کسی که نیکی کرده از تمام کنیم و برای اینکه هر چیزی را بیان نماییم و هدایت و رحمتی باشد امید که به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند. قرآن کنیم در مورد مشکان زمان محمد نبی نیز میفرماید که آنها زنده شدن دوباره خودشون رو که پیامبر اون رو تبلیغ میکرده انکار میکردن و می‌گفتند: عقل ما هرگز باور نمی‌کنه به بعد از خاک شدن دوبار زنده بشیم و حیات دیگه ای رو داشته باشیم. سوره سجده آیه دهم. و گفتند آیا وقتی در دل زمین گم شدیم آیا باز ما در خلقت جدید خواهیم بود نه بلکه آنها به لقای پروردگارشان و حضور او کافرند سوره قاف آیات دو الی سوم آنان نگرویدند بلکه از اینکه دهندی از خودشان بر ایشان آمد در شگفت شدند و کافران گفتند این محمد و حکایت معاد چیز عجیبی است آیا چون مردیم و خاک شدیم زنده می این بازگشتی بعید است. آیات زیر نیز نشانگر اینه که یکی از اهداف انبیا مسئله معاد بوده. سوره مؤمن آیه پانزه بالا برندی درجات صاحب عرش به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح را به فرمان خویش می تا مردم را از روز مراقات با الله آگاهی دهد. سوره انعام آیه 130 ای گروه جن و انس آیا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار گفتند ما به زیان خود گواهی دهیم که آری آمدند و زندگی دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر بودند عدالت اجتماعی از اهداف دیگر انبیا بر عدل و داد بوده. اونا معموریت داشتن تا با مفاسد اجتماعی دوران خودشون مبارزه کنند و ادالت و قسط رو در جامعه بشری حاکم کنند. سوری حدید 25م پنجم براسی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به ادالت برخیزند. انبیاء الهی اعلاوه بر دعوت انسانها به توحید و معاد وظیفه داشتن تا با مفاسد اجتماعی مبارزه کنند و جامعه خودشون را اصلاح کنند چنانکه شعیب نبی هدف از بعثت خودشو اینچنین بیان میکنه صوره حود آیه هشتاد من قصی جز اصلاح جامعه تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به یاری الله نیست بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم موسای نبی نیز به برادرش هارون چینی سفارش می‌کنه سوره اعراف آیه 142 و موسا هنگام رفتن به کوه تور به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و کار آنان را اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن هر یک از انبیا با مفاسد اجتماعی زمان خودشون به مبارزه بر می‌خواستن صالح نبی نیز با اصراف مبارزه می‌کرد و از مردم می‌خواست از فرمان مصرفین یعنی متجاوزان به حدود الله تبعیت نکنند. سوره شعرا آیات 151-152 و فرمان متجاوزان را پیروی مکنید آنان که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. لوت نبی نیز با مفاسد جامعه خودش به مبارزه برخواسته بود. قوم قوملوت افرادی همجنس باز بودند. اونا به جای ازدواج با زنای جامعه خودشون به لوات آلوده شده بودند. سوره شعرا آیات 165 الى 166 آیا از میان مردم جهان با مردها در می آمیزید؟ و آنچرا پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده با می گذارید؟ نه بلکه شما مردمی تجاوز کانید. شعیب نبی نیز، با مفاسد اقتصادی جامعه خودش به مبارزه برخواسته بود او به بردم جامعه خودش این گونه تبلیغ میکرد که دست از کم فروشی و هر گونه استثمار اقتصادی بردارند سوری شعرا آیات 181 الی سه، پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان و با ترازوی درست بسنجید و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید سوری حود آیه هشتاد و پنجم و ای قوم من پیمان و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم دهید و در زمین به فساد سر بر مدارید اعراف آیه هشتاد و پنجم در حقیقت شما را از جانب پروردگارتان برهانی روشن آمده است حس پیمانه و ترازو را تمام نهید و انوال مردم را کم مدهید و در زمین بعد از اصلاح آن فساد مکنید این رهنمودها ها اگر مؤمنید برای شما بهتر است همان همانگونه که ملاحظه کردید هر یک از انبیا برای برپای قصد و عدل با این اجتماعی جامعه خودشون به مبارزه برخواسته بودد دامنه مبارزه پیگیرون ها شامل همه مفاسد اجتماعی می شده ادالت از نظر اونها معنای وسیع داشته و شامل همه مسائل اجتماعی می شده برای اونها هم مسائل حقوقی جامعه مطرح بوده و هم مسائل اقتصادی جامعه از نظر اونها ادالت اجتماعی هنگامی تحقق پیدا می کرده که حتی این انحرافات و مفاسد جنسی و اخلاقی نیز از میان برداشته می‌شود و تنها های الهی و توحیدی در همه ابعادش در جوامع بشری حاکمیت پیدا میکرده. تعلیم حکمت یکی دیگه از اهداف انبیا تعلیم حکمت بوده که در آیات متعدد قرآن کریم به اون اشاره شده سوره بقره آیه 129 پروردگارا در میان آنان فرستادی از خودشان برانگیز تا آیاتو تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزیشان کند زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی طبق آیه مورد اشاره امام ابراهیم از الله متعال میخواد تا پیامبرانی رو برای امتش مبعوث کنه و به اونها اهدافی رو ارائه بده که یکی از اون اهداف تعلیم حکمته یکی از اهداف مسیح عیسی ابن مریم نیز حکمت بوده چنانکه که میفرماید سوری و زخروف آیه و چون ایسا دلایل آشکار آورد گفت براسی برای شما حکمت آوردم و تا در باری بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید توضیح دهم ده پس تقوای الهی پیش سازید و فرمانم ببرید در مورد هدف رسالت محمد نبی نیز قرآن مبین مسئله حکمت رو مطرح میکنه. سوره نسا آیه صد سیزدهم و اگر فضل الله و رحمت او بر تو نبود تایفی از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه بدر کنند ولی جز خودشان کسی را گمراه نمیسازند و هیچ گونه زیانی به تو نمی و الله کتاب و حکمت بر تو ناظر کرد و آنچه را به تو آموخت و توضل الله بر تو همواره بزرگ بود سوری بغیره آیه 150 همانطور که در میان شما فرستادی از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاک میگرداند و به شما کتاب و حکمت میآموزد و آنچه را نمیدانستید به شما یاد میداد سوری آل امران آیه 164 بیاقین یقین الله بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند سوری جمعه آیه دوم اوس آنکه در میان غیر بنی اسرائیل فرستادی از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به بیاموزد و آنان قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند حال باید بررسی کنیم که معنای حکمت چیه؟ حکمت عبارت است از مجموعه احکام فتاوی و دستورات الهیه که در متن مقدس به ما انزل الله جاریه و تبعیت از این فرامین موجب روشنبینی فرد میشه و به واسطه اون میتونه حق رو از باطل تمیز بده سوری اسرا آیه سی و نهم این سفارش ها از حکمت است که پروردگارت به تو وحی کرده است و با الله یگانه معبودی دیگر قرار مده وگرنه حسرت زده و مترود در جهنم افکنده خواهی شد مجموع احکامی که قبل از این آیه بیان شده عبارتند از پرستش الله یکتا احسان به پدر و مادر اعطای حقوق نزیکان یتیمان و فقرا، رعایت اعتدال در انفاق و بخشش خودداری از کشتن فرزند از ترس فقر و تنگدسی پرهیز از زنا و رابطی جنسی نامشروع پرهیز از قسل و جنایت تجاوز نکردن به انوار یتیمان وفای به عهد خودداری از کمفروشی یعنی رعایت ادالت در معاملات اقتصادی عدم تقلید کورکورانه یعنی پیروی نکردن از آنچه که با آن علم ندارید پرهیز از تکبر و نخفت و فخر فروشی پس با این وسعت حکمت عبارت است از به کارگیری اوامر و نواهی الهی که در متن مقدس قرآن و کتب من قبل جاری و ساری شده و سعادت دنیا و آخرت فرد به واسطه اعتقاد و عمل به اون تضمین میشه ولاغیر تزکیه و تقوا یکی دیگه از اهداف انبیا تذکیه و تقوا بوده است تذکیه یعنی پاکسازی اون هم نه پاکسازی برون که پاکسازی درون گرد و قبارها درون آدمی رو آلوده میسازن که اگر از میان نران انسان رو از رشد و اطلاع و کمال باز می‌دارند اگر فرد نتونه زنجیرهای اسارت درونی رو یکی پس از دیگری باز کنه هیچگاه رشد پیدا نمیکنه و به کمال و اطلاع و پویایی نمیرسه کسی که اسیر بندهای درونیه نمیتونه ادعای رشد و کمال بکنه چنین فردی ممکن توسعه پیدا کنه یعنی از نظر مال و ثروت یا جاه و مقام افسایش حاصل کنه اما هیچگاه رشد صحیح نخواهد کرد انسان پلیدی های بسیاری رو میتونه در درون خودش جمع کنه که اگر با اونا به مبارزه برنخیزه آسیب های بسیاری رو به خود و دیگران وارد میکنه اگر انسان از درون ساخته نشه یعنی قلب او از بیماری های خودخواهی کبر و قرور حسد و برتری جویی نجات پیدا نکنه از همه چیز در جهد سقوط استفاده میکنه فردی که از درونی بیمار و آلوده برخورداره حتی اگر عالم و دانشمند هم بشه از علم و دانش خودش در مسیر نابودی جامعه بشری استفاده میکنه اهمیت مسئله تذکیه تا اونجاست که قرآن کریم اون رو یکی از وظایف انبیا میدونه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 بندهایی رو که بشر بر دست و پای خودشون بستن رو باز کنن بشریت رو از زندان خودخواهی آزاد کنن تعمیره از خودمهوری و خودکامگی رو به انسانها بچشونن تذکیه از جمله اوامیلیه که موجب رشد و کمال فلاح و رستگاری انسان رو فراهم میکنه. کنه سوره شمس آیات نه الی الاده هم. که هرکس آن را پاک کردانید قطعا رهستگان شد و هر که آلودش ساخت قطعا در باخت تغوا از جمله مسائلی که انبیا مردم رو به سوی اون دعوت می تقوا به معنی اجتناب و پرهیزکاریه که فرد با ایمان بایسی به حدود و دستورات مقرر شده از سوی حق تعالی پایبند بوده و در این راستا هیچ کن تقدی و تجاوز به این حریم نداشته باشه قرآن کریم از زبان انبیاء الهی چون نوح و هود و صالح و و شعب الیاس ایسا نقره میکنه که مردم رو به سوی تقواد دعوت می کردند نوح نبی از امت و خودش می که تقوا پیشه کنند سوره شعراء آیه صد و چون برادرش نوح به آنان گفت آیا تقوای الهی پیشه میسازید هود نبی نیز از قوم خودش می که تقوای الهی پیشه کنند سوره شعرا آیه صد و آنگاه که برادرشان هود آنن گفت آیا تقوا الهی پیشه میسازید ساله نبی هم قوم خودش رو به تقوا دعوت میکرد سوره شعرا آیه 142 چهل دوم آنگاه که برادرشان سالح آنن گفت آیا تقوای الهی پیشه میسازید لوط هم قوم خودش رو به تقوا دعوت میکنه سوری شعرا آیه 161 شست انگاه برادرشن لوت به آنن گفت آیا تقوا الهی پیش میسازید؟ شعیب هم قوم خودش را به تقوا دعوت میکرده سوری شعرا آیه سد شستی کم انگاه برادرشن لطب آنن گفت آیا تقوای الهی پیشه میسازید؟ الیاس نبی نیز قوم خودش را به تقوا دعوت میکنه سوری صافات آیات 123 و 124 و, و براسی الیاس از فرسادگان ما بود چون به قوم خود گفت آیا تقوی الهی پیشه نمیسازید؟ مسیح عیسی بن مریم نیز قوم خودش رو به تقوا دعوت می کرده سوری زخروف آیه شست سوم و چون ایسا دلائل آشکار آورد گفت براسی برای شما حکمت آوردم و تا درباری بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید توضیح تن پس تقوای الهی پیش سازید و اطاعتم کنید انبیا مأموریت داشتن تا به وسیله تقوا و تزکیه مردم رو روش بدن. اونا رو به سوی اعمال ساله سوق بدن و هر گونه پلیدی رو از اونها دور کنن و به بیان دیگه اونا رو تربیت کنن. آزادسازی بشریت از قل و زنجیرها یکی دیگه از اهداف انبیا آزادسازی بشریت از قل و زنجیرها بوده. انبیا با دو گونه قل و زنجیر رو برو بودند. یکی قل و زنجیرهای درونی و دیگری قل و زنجیرهای برونی زنجیرهای درونی عبارت بودند از هوای نفسانی و تمایلات سرکش و منفی انسانها که بزرگترین صد راه تکامل اونها به شما میرفته زنجیرهای برونی نیز عبارت بودند از ارزشها و قوانین زد الهی حاکم بر جوامع انسانی انبیا با این قل و زنجیرها نیز به مبارزه برخواسته بودند اونا اومدن تا بندهایی رو که بر دست و پای وجود انسان ها شده بود رو باز کنن. اومدن تا انسان ها رو از همه زنجیرهای درونی و برونی رها کنن. اومدن تا بت و نیاکان و سنت جاهلی آبا و اجرادی رو از میان بردارن. اومدن تا ارزش های که بر جوامع بشری حاکم بود رو نابود کنن و به جای اونها ارزش های نوی رو حاکم کنن. اومدن تا تکالیف عبس و بیهودی که افراد به اونها پایبند بودن رو نابود کنند و به جای اونها تکالیفی الهی و توحیدی رو جایگزین کنند. سوره اعراف آیه 157 همانان که از این فرستاده پیامبر غیر بنی اسرائیل که نام او را نزد خود در تورات انجیل نوشته مییابند پیروی می کنند. همان پیامبری که آنان را به کار پسندیده فرمان میدهد و از کار ناپسند باز می‌دارد و بنای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام میگرداند و از دوش آنان قید و بندهایی که بر ایشان بوده است را برمیدارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتن و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده بود پیروی کردند آنان همان رستکارانند در آخر از اینکه به سخنان بنده